اگر محمد سهلونی بود و شد بهتری که با تا تا بدونه جاعتی امرعتون کریمتون خب این مثال در اصل این مثال در اصل چنین بوده؟ این مثال در اصل چنین بوده است جاعت می امراتون امراتون کریمون ابوها کریمون ابو و فصد به حال متعلق موضوع بوده است و صفت به حال متعلق موضوع بوده است و, و همانطور که پیداست جاری ارا و تعلی گنجی مطابق با معقب و در تذکیر و تنیست و در تذکیر و تنیست و افراد و تصمیه و جمع و افراد و تصمیه و جمع مطابق با مابند است مطابق با مابند یعنی فائلش اقوها میباشد درست درسته؟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 که شود از زمیر معمول صفت مشفهه را برداشته و آن را در صفت مشفهه مستقر نموده و به جای آن زمیر و به جای آن زمیر علف ولام بر سر معمول صفت مشبهه در آورید علف بر سر معمول صفت مشبهه در آوری. و بعد به خاطر تقدیب و بعد به خاطر تقدیب صفت مشابه را به سوی این معمول معرفته علف به سونگ این مهمول محضرت زهن اطلاع اضافه نماییم اضافه نماییم ما هیچنین کردیم زمیر ابوها را در کریم مستدر نمودیم زنیر ابوها را در کریم مستدر نمودیم کریمتون شد کریمتون داخل به هندسی هست یهیت و بعد الفلام به عب دادیم العب شد و بعد کریمه را به العب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 چسب تحریم نمی کند موزاق چسب تحریم نمی کند لذا کریمت العب می تواند صفت امرهتون باشد لذا کریمت العب می تواند صفت امرهتون باشد ها ها اگر به این نسال به اصلش نگاه کنی که جاعتمی امره اتون که جاعتمی امره کریمون ابوها بود کریمون ابوها بود سفت به حال متعلق منصوب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 صفت به حال موصوب به حساباید صفت به حال موصوب به حساباید لذا میبایست میبایست با موصوب به فیش با موصوب به فیش در چهار چیز از اون ده چیز مطابقت نماید مطابقت یه جزوی کامل شده این بحثمون مختلفون پی بردن درست شد خب حالا نگاه کنید میگه جاعتی عتلی کریمت خلیفۃ الان داره کریمت العرب رو این چهار تا از ده تا مطابقت کنه انگار شده صفت و حال جو علی رجولانی کریم ما العرب هم داره مطابقت رجالون کرامون کرام, و... کرام جمع کریم مطابقه نیکنه درست حالا اون تمرین اول دو. من منبراتون اصل و فرقشو مشخص کردم تندرین دوکم رجلان کریما الاغه قبل از اضافه چی بوده؟ این اون زمانی که به حال متعلق محصوب بوده هستش چی بوده؟ جانی جا رجلانه کریمون ابوه م او ابواب درست تو به من میشه چی سر گفتمینه پدر جانم جا ان دیگه جانم کریمون آبا ابوم آبا ابوم یا ابوم درست شد؟ پس بنابراین این، چه که اینجا شیخ عنوان کرد به این رفع زمیر المصوب و موافق عیزن یعنی میشه مثل صورت نتحقی یعنی در واقع چیز جدیدی نگفت این ما یه دید به حال متعنده که دیده اولی و با دوم دوان صفت به حال محصوبه و ایلا کنفکن فر بذاریم یک نقطه ای تو کتاب همین کتاب خودمون خوندیم که برای فردا لازم داریم که کجاها ما که تنیز به فرم و رفت می کنیم که یه اشارت مایی داریم این برای درس فردای ما لازمه تا نرش